بسم الله الرحمن الرحیم بنام خداوند بخشنده مهربانه اینا عقینات کوتاه بیکمان ما بتوان کوتاهتر کردیم. فصلی غضب وانحص. اکنون که چونی نه برای پرداخت کارت نماز بخون و قربانی کن. این شایئته هو الابتر مسلمن دشمن تو ابتر و دمپوریده